بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته باب من لم يشكر الناس حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه وعين أما بعد نمد وششومين باب از اباب صحيح دمفرد قفته من بخاري رحمه الله باب من لم يشكر للناس كسيك زبون زبان شكري از مردم نداره كسي تشكر از مردم نمي کنه در رضای اون خوبی وحصاني كه در حقش دارن شاكر نیست كفران نعمت مي بدبینه. همش بدی میبینه این طبیعت سرشته. انسانی که خوبی میبینه انسانی که حسن ظن به مردم داره زبان شاکری هم داره کسی که بدبینه نسبت مردم کسی که فقط بدی رو میبینه نمیتونه شکر گذار باشه چطور شکر گذار باشه وقتی که بدی میبینه شکر وقتی میاد که انسان خوبی را به چشم بیاره وقتی خوبی رو ببینه 166 حدیث حدیث ابوهریره رضی الله عنه وغفر الله له وامه کمی یادر رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمودن لا یشکر الله من لا یشکر من, من لا یشکر الناس لا یشکر لا یشکر الله شکر الله نیست اون کسی که از مردم تشکر نمیکنه کنه شکر الله نیست و نمیتونه شکر الله باشه کسی که کسی که تشکر از مردم نمیکنه در ازای اون خوبی هاشون احسانشون جالام یک اشاره می کنن در شرح این حدیث میگن که کسی که طبیعتش سرشتش بر ناسپاسی باشه توفیق شکر الهی را پیدا نمیکنه. کسی که سرشتش ناسپاس نعمت را به چش نمیاره. نعمت را نمی بینه. خوبی ها را نمی بینه کره کودله این سلب توفیق میشه از شکر سپاس الله جلش. سلب توفیق میشه. این معمولا دونی که پیش میاد بیشتر بیشتر برای فرزندان در مقابل پدر و مادرشون. پدر و مادر او را به دنیا آوردن. خودتون الان جوونید میدونید چقدر مکافات تا اینکه زنی بگیرید ازدواجی بکنید حالا بعد از اون دیگه مرحله دیگر خانه و زندگی و بچه بعد اون بچه ریپای خودش که میسه اعتراض داره که چرا ما رو به دنیا آوردید چرا اصلا من اومدم ناسپاسی ناشکریه چه موقع این ناسپاسی ناشکری پیش میاد چون حدیث وقتی که میاد هم درد رو میگه و هم درمان رو میگه. کسی که نتونه با خوش خوشبین باشه نمیتونه در مقابل خلق خوش خوشبین باشه. و تورو عکسش با هم دیگه داره. کسی که نمیتونه خیر و نعمت پدر مادرش رو ببینه نمیتونه خیر و نعمت الهی رو هم ببینه به چشمی بیاره طبیعه سرشته. کسی که خوب ببینه همیشه خوشبینه. الله خیریت من رو خواسته. الله خیر خواه منه. منت من بر من گذاشته تا من نفسی بکشم، سر بر بذارم، شکرش رو بوجا بیارم. منو انتخاب کرد. الحمدلله حیوانی نبودم ای نبودم جانداری نبودم شدم انسان که مکرم شده با تکریف و عقل شکر سپاس رو میاره این قضیه رو همیشه بازگو کردم و اینجا هم بازم میگم انسان فرزند پیغمبر الهی باشه ولی ناصف واس باشه شما آدم دارید و قابل شما نوح دارید و فرزندش گفت سوار کشتی بشو گفت سوار نمیشم سوابی لجبلن یعصمونی میرم به کوه میبرم. اعتماد حتی پدرش هم نداشت. یا برادران یوسف ناشک بودند در مقابل پدرش که پیغمبره. چرا پدر من توجه خاصی به یوسف داره؟ این همه نعمت شما پیامبر برزاده اید با این کرم و این اخلاق رسول الله صلی الله میگه درباره یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم سلاله پاک مکرم نازل الله جل شانه. ولی هو کفرانا. کفران مثلا سبب سبب چی میشه؟ ناسپاسی و کفران نعمت سبب توغیان، به طبعی حسادت، سبب ظلم، تعدی، تجاوز برادرشون رو گرفتن، توچاه انداختن چرا؟ پدر توجه خاصی داره بریم یوسف رو توچاه بندازیم تا تو پدر مال ما خاص بشه برای خودمون یخلولکم و جوابیکم شیطان این چینین اغواه کرده بود، گمراه شون کرده بود اگر شاکر بودن، از پدر میکنید این اولین، پایه و اساس شکر اگر شاکر بودن و این انتخاب الهی را به چشم در این حسادت نمی افتادن در این ظلم نمی افتادن اینجا هست که علما میگم اشاره میکنن سلب توفیق میشه کسی که نعمت را به چش نداشته باشه خیر و خوبی رو نبینه احسان دیگران در حق خودش نبینه خصوص احسان والدین در حقش سلب توفیق هدایت میشه فرزندی که ناسپاسه فرزندی که قدر نعمت رو نبینه سلب توفیق میشه از الله جل شان و فرزند نوح سلب توفیق شد و شد در اون توفان موظب باشید غرق نشید خودتو رو غرق نکنید غرق شدن و نشدن به دست خودم و اراده خودتونه زیغ از خودت انحراف از خودت گمراهی از خودت شروع میشه تو نخواهی که هدایت بشی هدایت نمیشی سلب توفیق از هدایت میشی راه توفیقی یافتن به هدایت الهی یکی از راهاش اینجا در حدیث یاد شده چیه؟ شکر و سپاس و به جاوردن اون خوبی ها. احسان نعمت و فض و کسی در حق من داره این یکی از اسباب توفیقه یکی از اسباب هدایت اون فرزنده الله درهای خیر و رحمت را برش میگوشاید چون اون چیزی که الله ازش خاصه را در زندگی خودش داره بهش عمل میکنه و انجام میده خطابی در شرح این حدیث دو تا مسئله اینجا اشاره میکنه اول میگه که کسی که طبیعتش کفران نعمت باشه کفران نعمت الهی میکنه کسی که طبیعتش کفران نعمت باشه کفران نعمت مردم خوبی مردم به چه شاده باشه خوبی مردم این طبیعتش سرش میره بر به سمت کفران نعمت الهی دو اینکه الله ذات اون شکرت اون سپاست رو پذیر اگر شکرگزار از مردم نباشی قدر خوبی هاشون ندونید زیر پا بذارید فضلشون و مننتشون نعمتشون خوبیشون به چش نیاری الله ازت اون عبادتت اون طاعتت خوصا نمازی که از باب شک و انجام میدیم ازت الله نمیپذیره الله جمعه در شهر به نسبت بعضی از اعمال که الله جل و علا اعمال شخص را نمیپذیره مثلا دو نفری که با هم دیگر قهرن دو شنبه و پنجشنبه میشه با هم دیگه صلح نمیکنن اعمالش رو پذیرفته نمیشه تا اینکه صلح بکنن یا به نسبت شخصی که زنش بد اخلاق یا بردی که فرار کرده رسول الله صلی الله علیه و, و آله میفرماند دعاشون اجابت نمیشه یعنی عمله طاعت عبادت ولی ازشون پذیرفته نمیشه و الی آخر نمونه های مختلفی ما داریم که میتونه دلیل باشه بر این قسمت دوم گفته خطابی برای اینکه کسی که زبان شکری از مردم نداره الله ازش اون سپاسش و شکرش نسبت به خودش نمیپذیره شکر نوعی از انواع خوبی یعنی دری از ذرهای خوبی احسانه، احسان زبان شاکری داشته باشه پدر مادرته اون لبخندت اون اطاعتت از فرمانشون از دستورشون اون یاریشون تو منزل کاری داشته باشه زیارتشون تماس گرفتن و صحبت کردن همه اینها نوعی از انواع چیه سپاس همطور که نمازت رکوعت سجدت سپاس الهی شکره در مقابل اون نعمتایی که به داده تو سر به سجده‌اش میذاری. پدر و مادرم همینطور در مقابل اون فضلی که به گردنت دارن تو جلوش سر خم می‌کنی حرفشون رو چرا میذاری، با ادب و احترام باشون برخورد میکنی. اینا نمای ادب فرد مؤمنه مؤمن متقی بود چنین باشه وقتی میگم نما این نمای زیبایی داری نمای زشتی داریم نمای زیبا اخلاق برخورد درست احترام تقدیر اینا همه وجود شکره. برخلافش و برخلافش نمای زشت، کفران نعمت بدی بددهنی، دهنی بر بد اخلاقی انسان مؤمن باید زیبا باشه زبان شاکری داشته باشه نعمت را به چش بیاره نه قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى للنفس خرجي قالت لا أخرج إلا كارها سادشاسي يكومين حديث حديثة بحرير رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه أزر رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يقول قال الله تعالى للنفس زمانك الروح أزبادان كشدي مشه الله داسور مدد جبريل روحه وبكشه الله بأون روح ميقو يات أخرجي روح بيابيرون مولات دار أون جسدت ومشوده قالت روح میگه زمانی که الله دستور میده که از اون تن بیاد بیرون و ملک الموت اومده برای قبض اون روح هستن اون شخص اون روح میگه لا اخرج الا كارها خارج نمیشه بیرون نمیاد مگر با کرح نمیخواد بیرون بیاد از اون تن جا خوش کرده به خلقتم دنیا زیباس حلوه خضره چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایان خوشه انسان مغر و دوست نداره و, و دلبسه به دل دنیاس ولكن هميشه روح جيسي مشتر مش روحه ينديوريان بعض روحه شنانك في ملازة وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل موت ميت يجازي مغير براء قبض روحش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرفه وصحابه وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم شنينه چي بود؟ اللهم رفىق على رفىق على رفاقه خود بار الله خد نزد الله بره مشتاقه وديدار الله وعذا الله میتلبی والشوق إلى لقائك غیر ظراع مضره ولا فتته مظله عز الله مخصص این شوق را ازش نگیر شوق ملاقاتش این روح چی روح مؤمن و متقی با رضای نفس این روح از اون میشه ولی بیشتر مؤمنین یا بیشتر مردم چینی نیستن بیشتر مردم چینی نیستن بیشتر مردم در کفران نعمت همونطور که رسول در خطاب مردم میفرما رایت کن به زنا میگه رایت اکثر اهل النار بیشتر این جهنم شما زنا دیدم چرا صفت وصفی که سبب شده که مستحق جهنم بشن لان کنا تکفرن العشیر خوبی و احصار بکشنم یارید کفران نعمت میکنید بخاطر همین که اینجا حالا شاید وجه شاهد باشه شاید که امام بخاری این حدیث رو آورده مختصای شکر اینه که انسان نفسش روحش راضی باشه که از اون طنجدا بشه به دستور فرما الهی و عدم شکر و ناسپاسی اینه که راضی نباشه میخواد این دنیا خوش باشه و خوش بگذرانه بله قال المؤلف رحمه الله باب معونة الرجل أخاه حدثنا اسماعيل بن قويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قيل فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل قال فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق قال أفرأيت إن ضعفت قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك إن جتناك شيخونان فتعين ضائعا ودى الرواية ديكار صانعا وسحيح درج صانعان هاس ساحی ترش صنعان الله ان شاء الله در زمین شهر خواهیم گفت. این از باب تاسیع گفته. نواده هفتمیم باب از باب ساحی ادم مفرد من بخاری رحمه الله و اسكند فصیح جناته. گفتش باب و معونة الرجل الاخاه. معونه از عونه کما کسی برادرش یاری بده. حدیث سایش السدو حدیث ابو زر الغفاری رضی الله عنه که مگید رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین ازش سوال شد. ای اعمال خیر چه عملی بهتره خوبتره. ای عمل افضل کدوم عمل بهتره قال ایمان بِالله و جهاد فی از ایمان که نداریم بعد از اون جهاد در راه الله اول ایمان ایمان که پاداشش بهشته و سبب ورود بهشته ایمان نداشته باشی بهشی ده کار نیست و بعد از اون جهاد در راه الله جل وعلا انجا حرس صحابه رو رسول بر یادگیریه یا دنبال مسلحت اخرویشون دنبال که بهترین اعمال رو انجام بدن که درجه بالایی در بهش داشته باشند برای اینکه ترازی اعمال خوبیشونو در آخرت سنگیم بکنند دنبال اینه. مخاطر همین سوال میپرسه یا رسول الله بهتر عمل چیه که ما رو وارد بهش بکنه ایمان ایمان هم به وجود نمیاد جز با علم گفتیم اعراب سلب توفیق شدن از ایمان و حالت اعراب و امنا قلنا تمؤمن ولكن قولوا اسلمنا برای چی سلب ایمان شدن گفتن الله بهشون میگه بگید مسلمان شدیم ایمان نیوردید چون اعراب بودین نشین بودن نمیوندن در حلقات رسول الله صلی علیه در حلقات علم نمی نشستن به خاطر همین الله بهشون میگه شما بگید ما مسلمون شدیم ایمان با علم پرورش پیدا میکنه ایمان با علم رشد میکنه شما این احادیث را میخونید این همه فضل فازل و فضیلت و محاسن دین در حقوق پدر و مادر و همسایه و دوست و رفیق و همسر و فرزند و غیر آیا کسی که نمیدونه مثل کسی که میدونه هلیا سب الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا خود ما قبل از دونستن اینها مثل اون وقتی که میدونیم مثل هم هستیم میدونیم که ما الان علمون در اضافه میشه این سری حقوق یک سری چیزهایی که ما نمیدونسیم داریم میاد میگیریم داریم در دینیمون با بصیرت میشیم چرا الله الله ازمون خواسته قیل و فالاخره قال فای رقاب افضل فای رقابی افضل قال اغلاها ثمنا وانفسرا عند اهلها کدام برده آزاد کردن بهتره برده آزاد کردن خیلی شرف داره، فضیلت داره یکی از اعمال که بزرگه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در پاسخ گفتن اغلاها ثمنه گرانترینشون ترینشون از راز قیمت گران باشه و انفسها عند اهلها گران بها ترشون نز صاحبانشون مالکینشون گران و گران بها انفس نفیسه گران بهاست خوصا وقتی جوان باشه وقتی که تنمن باشه وقتی که اهل کار و اهل یاری و صحمت باشه خوش به زحمت بیندازه برای مالکش، صاحبش، عزیز میشه. خب این نفیسه. به این توفیق میخواد که حالا خوصا در اون زمانه که برده بوده که چون این برده ای انسان گیرش بیاد بعدم بیاد آزادشم بکنه. یعنی برده ی آدم داشته باشه نفیس گرامبها بعد اون برده را آزاد بکنه. این عمل شرافتمندانهی است. یکی از بهترین... اعمالی که اینجا رسول الله صلی الله بعد از ایمان و بعد از جهاد یاد میکنن قال فرأیتا این لم استطع بعض العمل یعنی اگر نتونستم یعنی بعضی از این اعمال را انجام بدم حالا اگر جهاد شاید محروم بشه یا اگر بردو ازاد کردنه مثلا الان دور زمان خودمون خب چیکار کنیم الان قال فتعین صانعا او تصنع لأخراق فتعین صانعا رواتی که شیخ خوندن فتعین ضائعا کسی که گم شده، راه و گم کرده، یاریش بدی که به اون شهرش، مکانش، جاش برسه. نابیناس برسونی به منزلش. فتوعین و ضاععه. کسی گم شده جا منزلش رو بهش پیدا کنی. ولی خب صحیح تر اون روایتی هست که گفته شده فتوعین و صانع. صانع سندگره. سندگران مردم چشمشون بهشون به بنی نیازیه که کمکی نمیخوان مستقل خودشونن درآمد خوبی دارن حسین که کارگاهی کارخونه ای چیزی دارن اصبر بنی نیازی شونه باطره مرد هیچ وقت توقع ندارن که اونها نیاز به یاری داشته باشن باطره همینه که اینجا در این حدیث شما چرا بعضی از علما گفتن رسول الله صلی الله علیه و توصیه کرد که فکر نکنید اون بی نیازه اونم نیازمند یاریش بدید و صاحب صنعت و صانع تو اینو از ععانت یاریه. او تصنع الى اخرق اخرق کسی که کار و کاسی بلد نیست. سنعتی بلد نیست. بلد نیست کار بکنه. حرفه ای نداره. تو بری یاریش بدی. حالا میخواد منزل باشه. در و پنجرهش باشه. توی کاری از اون کارهایی که نیازمندشه. از پسش بر نمیاد تو یاریش بدی تو اون کار. میخواد بره مسافرت نمیدونه. میخواد بره درمان نمیدونه. که چطور از کجا شروع کنه با چی بره با چی بیاد کجا مسکن بگیره حالا این خصوص این مسائل تو غربت زیاد پیش میاد انسان وقتی که کسی نداشته باشه کسی رو نشناسه اینجا جلبه و شکوه شهر در اون ایجاد اخوته برادریه که در هیچ دیانتی و دین این جلبه و شکوه شما نمیبینید غریب اومده به شهرت کاری بلند نیست جایی نداره کسی رو نمیشناسه تو یاریش میدی. دستش بگیری پناهش بدی الا از اون مهمانیش دیافته و وله آخر کدوم دین این چین توفسیی های شرافت ای داره. هرچه که مسلمان الان ضعیفهه مسلمان از مسلمان الان در گریزه فراریه از هم دیگه هر کسی میخواد شونه رو خالی بکنه این رودوش یکی دیگه بندازه اون یکی دیگه بندازه مسلمان ها چون ضعیف شدن چون این حدیث خونده نشده گفته نشده وقتی که آدم قدر یه چیز نمیدونه. چطور از پس شکرش بر بیاد نمیتونه از پس شکرش بر بیاد وقتی که نمیدونه باید بدونه تا از پس شکرش بر بیاد وقتی که بدونی مهمون چقدر حق داره چقدر فزیلت داره چقدر الی آخر چقدر خیر و روزی هستن تو همین دنیا برات باز میشه غیر از و آخرتش تو میشه تو بیبراش ولی وقتی که نمیدونی دیگه بی خیال میشی بهش و سعی میکنه از دوش خود بیاندازی رو دوش کسی دیگه بندازید اون رو فرصت نمیبینی برای خودت برخلاف صحابه چون میدونسن فرصت اله صحابیه خودش نداره میاد مهمون رسول الله صلی الله علیه و سلم به منزل خودش بچه هاشو میخوابونه برای اینکه مهمونش خلوت بکنه با اون غذا به تنهایی بخوره خودشون هم نمیخورن خودشون سرش بعد آیات قرآن نازل میشه یعثرون علی انفسهم ولو بهم خصاصه خودشون نیازمند محتاجن ولی که از خودگذشتگی میکنن برای مؤمنی دیگر که برادرشونه این گفتم از علم یاد تا عل نباشه صفات نیک، های نیک در انسان شکوفا نمی‌شه. قال افرایت ان ضعفتم اگر خب ضعیف شدیم نتونستیم بازم کسی رو یاری بدیم. قال تدع الناس من شر مردم رو از شر خودت در امان بدار. شرت رو مردم نرسون. مردم رو از آزار نده. دست بکش از آزار عذیتشون. بعضیا نگاهشون آزاره ندی از حرف و سخنشون. نگاهشون آزاره. طلبکاران نگاه میکنن انگار که مالشونو رو خوردی اصل بر که جهاد وقتی که میاد اون جهاد شرعیه که با شمشیر اینه. الا اینکه صارفی باشه دلالت بده که این جهاد مطلق جهاده با نفس و اینا دیگر جهادهاش شامل بشه نه اصل بر که جهاد فی سبیل الله جهاده با شمشیر و خصوصا اینجا در سیاق دیگه واضحه که منظور جهاد جهاد در راه الله با رو باشه با دشمنه اینجا واضحه. اون بهترین عمل رو یاد میکنه نمیشه جهاد در راه طلب علم با اون قیاس گرف فضل و فضیلتش چون سینش رو سفر کرده برای اسلام خونش رو درگره و این جهاد گذاشته قال فا اینها صدقه اینکه مردم آزار اذیت ندی صدقه است برای تو حتی زبونت رو جلو دهنت بگیری تعنه نزنی غیبتشو نکنی بدگویشو نکنی جلو دهنت رو بگیری حرفی نزنی کنها صدقه است. تصدق بیها على نفسک، یعنی این صداقت برای خودت یعنی. داری ترازی حسناتت رو سنجید میکنی. با همون صورت چطوره؟ چون سکوت هم عبادت؟ الله جل و علا در قرآن یاد میکنه. از قول مسابت. لا لایتناهون عل منکر فعلو لبئس ما کانو یفعلون. این شف محمد دامین شنقتیم یاد در کتاب مزکر در اصول فقهش. بحث اصولیه. که آیا عدم عمل عمله عدم عمل كسي خودشو از عمل باز بداره 20 عملی انجام نده عمله بل عمله چرا شون الله جل شانه در قرآن میگه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلو لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلو عمل منکری که انجام میدادن نهی از اون نمی کردن چه عمل عمل عمل بعدشون یا عمل عدم نحی از اون عمل بد کانو ولایت لا, لا نفه لایت عن منکر منکرن فعله لا ما یا فعلون. اون عدم نشون از منکر عمل بدیه عمل بد که اول اوور عملشون بد بوده. نهی از اون عمل بد نمیکردن چقد بد اون عدم نی از منکر الان اینا ساکت شدن یک منکرید شخصی دیدم مشروب می نوشید نگفتم بهش مشروبشیدن حرامه. نهی نکردن جلو زبونشون گرفتن جایی که میتونستن ان این کار بکنن بگن. این شخص گناهکاره بله گناهکاره این شخص گناهکار روز قیامت محاسبه میشه چرا نهی از منکر نکرده؟ عملی نکرده، ساکت شده سکوت عمله محاخذه میشه لبئس مکانو یفعلون لبئس مکانو یفعلون نهی از منکر رو گذاشت اسمش فعل فیفعلون، لبئسه چه کار بده از انجام میدادن فعل یفعلون از عدم عملت چیه؟ عبادته و یا گناه و مرسیت؟ همون عدم عملت، جا عبادته و جای عدم عملت گناه و معصیت وقتی که تو بتونی آزار و اذیت بر به کسی ساکت بشی بتونی آزار و اذیتشون بدی اونجا سکوتت برات عبادت محسوب میشه این قبلا نشانه کردم ابتدای نهادیسی که خوندیم در این ابواب بحث و پیرامون اینه که انسان زندگیش روزمرگیش همش عبادته از صبح که بیدار میشه تا وقتی که میخوابه باید دوباره بیدار میشه انسان باید همیشه احتساب اجر داشته باشه حتی در سکوتش حتی در اون خابش وقت احتساب اج بکنه یعنی از الله طلب عجب بکنه ولله اون کار انجام بده چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلمی فرمای کُلُ مَعْرُوفٍ صَدَقَة هر معروف و نیکی همین که تو کسی را آزار ندی این معروف این نیکیه از جمله مسائل ریزی که تو این حدیث به اشاره شده حسن تعامل استاد با شاگردش شاگرد هی میپرسه حریصه که بتونه استاد با رفق و نرمی جواب میده رسول الله صلی الله علیه و سلم هی جواب میداد هر چی میپرسیدن إن رفقه سابره وحسن تعامله بله قال المؤلف رحمه الله باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن يزيد الأسدي عن فلان قال سمعت برمة بن ليث بن برمة أنه سمع قبيصة بن بورمة الأسدي رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة نوادو حشتمين باب الزباب السحيد مفرد من بخاري رحمه الله جفتاش باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة ونائك أهل نيك كاردان درين دنيا سان نیکی میبینن اونها که اهل بدی ان در این دنیا بدی میبینن 167مین حدیث حدیث قبیصه رضی الله عنه میگه نظر رسول الله صلی الله علیه سلام بودام چنین فرمودن اهل المعروف فی الدنيا هم اهل المعروف فی الاخره معروف چیه ابن الاثیر ده كتب النهایه میگه المعروف اسم جامع لکل ما عرفه من طاعه الله والتقرب له والاحسان إلى الناس اون نیکی ها با اون طاعت عبادت با اون به مردم کردن و هر چیزی که خوب شمرده از ساعت ها و عبادات و نیکی ها و كل من ادبه اله الشرع و نهى عنه من المحسنات والمقبحات و اي بندي در مقابل اون چیزایی که شرع تو را منع کرده انجامش ندي این معروفه کسانی که اهل معروفه اهل طاعت و عبادت و احسان و نیکی هم أهل المعروف في الاخره اونها هسه که در آخرات معروف خوبی و احسان و نیکی میبینن اهل معروفا يعني اونجا چنان اینجا خوبی کردن خوبی خواهند دید هل جزاء الاحسان الا الاحسان میگن اینطوری نیست که پاداش نیکی نیکیه نیکی کردی خوبی کردی خوبی خواهی دید این پاداشه و اهل المنکر فی الدنيا هم اهل المنکر فی الاخره اونها اهل منکرن منکر امر قبیحه زشته زننده هست اون کار بد و ناشایسته کسی که بد کار باشه بد خواهد دید حالا اون کار بد میشونه زنا باشه نگاه به نامحرم باشه گشتادن موسیقی باشه غیبت باشه نمامی خبرچینی دروغ بد کردی بد میبینی بد کردی بد میبینی اهل نماز نبودی بدی میبینی کسانی که اهل منکران در این دنیا اهل بدی در این دنیا در اون دنیا هم سزاشون بدیه اهل خوبی جزاشون خوبیه پاداش دارن جزا دارن و اهل بدی سزا دارن عذاب دارن توبیخ میشن بله. قال المؤلف رحمه الله حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة فقال إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان فعرفت أن ذلك كذلك فما حدثت به أحدا قط حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سنه شاشه خورمين حديث مثل حديث قبلي حديث معتمر ميگه اين حديث ان اهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الاخره ميگه به پدرم حديث حديث ابو عثمان السلمان ميگه تاییدش كرد پدرم گفت كه من شنيدم از ابو عثمان از سلمان اين حديثو نقل ميکنه فهميدم حديث صحيح يعني حديث ولي خب به كسي نگفتم ان أهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الآخرة. قلنا اي كه اهل خوبيان دنيا در اخرت خوبی خاندیت از الله متعال اجر قال المؤلف رحمه الله باب إن كل معروف صدقة حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة نواد و باب از باب صحیح ادب من بخاری رحمه الله گفته اش ان كل معروف صدقه هر معروف نیکی خوبی صدقه است سال 65 امین حدیث حدیث جابر رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام فرمودن کل معروف صدقه هر معروفی هر احسانی هر خوبی صدقه هست برای تو خصوصا اگر اون خوبی ارشاد به خوبی باشه دعوتی باشه به سوی خوبی قل هذه سبیل اهدعو الاله شرف ولا از دعوت دادن به سوی الله جل و علا میاد احادیث کسی که ك... را ارشاد بکنه به خوبی اجر اون خوبی رو داره پاداششو میبره معروف را نیکی را خوبی را هیچ وقت حقیر نشو مرید برات صدقه هست خصوصا گفتم وقتی که ك... اون ارشادت به سوی خوبی باشه دلالتت یعنی دلیلی باشی برای کسی به خوبی جای شخصی رو گم کرده نمیدونه علم رو از کجا کسب کنه ارشادش می‌کنی برو فلان عالم فلان نوار فلان درس و گوش بده اون شخصی که از تو یاد میگیره، اون شخصی که میره نمازشو درست میخونه اهل نماز میشه با همون یک توصیه کردن تو اجر مابخیش بردی من دعا الی هدا کان له من الاجر مثل اجر من تبعه لا ينقص من اجورهم شيء یعنی بدونیک اجر اون یک چیزی کم بشه با مجردی که تو دعوت می‌دی کسی رو اجر اون کسی که دعوتش دادی رو میبری بدون که اجرش کم بشه معروفه و این صدقه است در حق خودت این صدقه رو داری اعمال میکنی دری از درهای صدقه رو برای خودت داری باز میکنی بلکه یکی از بزرگترین درها یک نماز فاتحه یک سوره فاتحه است بچه‌ای را یاد دادی اون بچه سر نماز مییسه مدیون تو هست تو یادش دادی اجرش برای تو هم نوشته میشه من دعای الهی تو سبب خیر شدی برای اینکه این فاتحه رو یاد بگیره شقد فازيلته شقد عرزش درقي ما دري إنه معروف حسن الله و أحسن قولا من من دعا إلى الله تأخر و ومن أحسن قولا من من دعا تأخرش بعد شوي نجس الله أحسن أحسن أسموه بأفضل التفزيلة كيف ترى من من دعا إلى الله کسی که دعوت میده بسید الله آیا از این کسی که دعوت میده بسید الله کسی بهتر از اونم هست اینکه انسان بسید الله دعوت بده سببی بشه به دعوت الهی نواری بده یا درسی بفرسته یا پوستری یا مطلبی برای ارشاد مردم بینویسه حقیرش نشه مورید کچکش مورید شاید همون یک کلمه سبب هدایت خیلی ها بشه بخیل نباشید در دعوت بخیل در معروف در خوبی کردن در احسان کردن در خصوصا گفتم در دعوت دادن و راهنمایی کردن دیگران به سوی دین الهی چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن کل معروف صدق. صدقه صدقه یعنی چی صدقه از تصدیق میاد تصدیق ثوابه پاداشه تو معروف رو انجام میری چون الله جل و علا پاداش براش گذاشته و تو از باب تصدیق اون وعده الهی اون معروف رو داری انجام میدی این صدقه است تو تصدیق کردی اون وعده الهی به نسبت اون عمل این صدقه است تو صدقه کردی در حق خودت ابن بطال میگه دل حدیث بر آنکه كل شیعی که فاله الانسان او یقوله بیكتب له به صدقه هر معروف خوبی چه انسان بگه چه بنویسه فرقی نمیکنه حتی نوشتن صدقه است برای تو سوابه برای تو قاداشه برای تو خب حدیث بعدی. قال المؤلف رحمه الله حدثنا آدم ابن أبي ياسن قال حدثنا شعبه قال حدثني سعيد ابن أبي بوردة ابن أبي موسى عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قال فإن لم يجد قال فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف قالوا فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقه 166مین حدیث حدیث ابوموسی اشعری رضی الله عنه که میگه رسول صل الله صلی الله علیه و سلم على علی کل مسلم صدقه هر فردی از ما واجب بر ما که صدقه داشته باشیم اون نمازمون صدقه است اون روزمون والا فرض به کنار اون روزهای ناز و الی آخر والا هرچند که بعضی از این صدقاهایی که در حق خودمون داریم واجبه به بعضی ها مستحب على کل مسلم صدقه یعنی صدقات هستن بها هر فردی که واجبا صدقاتی که واجبا از باب شکر نعمت الهی مثل گفتیم نماز این یک وجهش اگر صدقه را عام بشورین که از باب تصدیق وعده الهی نسبت به پاداش باشه چلون چه حدیث قبلی داشتیم یا اینکه صدقه را ما بگیریم صدقه هم مالی را در راه الله دادن باشه چون اصل در اینه که صدقه دادن مالی را به کسی دادن عامش نکنیم جای عام میاد جای خاص میاد مالی که از باب دفع از باب خواهی از باب طلب اجرالله جل و علا در راه الله انسان به فقیر مستمندی بده فقیر یتیمی بده هر مسلمانی وزیفه است که صدقه بده صدقه واجب سه زکات صدقه نافلی ما غیر زکات قال و فا این لم یجد اگر نتونه نداشته باشه که مالی که بده این قرینه هست بر اینکه مراد از صدقه چیه؟ پوله پولی نداشته باشه یا رسول الله قال فیعتمل و بیده و نفسه و یا تصدق یا کار میکنه با رنج خودش زحمت خودش پول در میاره هم خودش رو سود میرسونه هم از اون پولی درآمدی که در آورده به دیگران میده صدقه میده قالو فا لم یست اولم یفل این کار نکرد یا نتونست قالو فا یعینو ذا الحاجت الملهوف یعینو اعانت میکنه یاری میکنه کسی که نیازمنده و حرفی نداره حالا مله گفته شده غمگین گفته شده مال باخته گفته شده کسی که در می واقع شده حالا همه اینا شامل میشه یک کسی که محتاجه نیازمنده را یاری بدی حالا با قولت با فعلت اگر استوانت برنمیاد کسی دیگه رو راهنمایی بکنه که یاریش بده باری رو از دوشش بردارید یهانتش بکنه یاریش بدی قالوا فان لم يفعل اگر این کارو نکرد قال فیامر بالخیر و به کی دعوت بده امر معروف بکنه نه از منکر بکنه یک مسئله اینجا هست در ترتیبی که در این حدیث از صدقه و مال شروع شد بعد کار کردن اومد بعد بیاری اومد بعد الان دعوت دادن اومد یا امر بالخیر یعنی دعوت بکنه مردم را به خیر دعوت کردن بعد از اون مال اومد اون کسب اومد چرا آیا فضلش با اینطره یعنی چون الان به ترتیب اومد اگر نتونست اگر نتونست اگر نتونست دعوت را هر کسی میتونه بده ولی مال را نه مال عزیزه و تحبون المال حبا جمع مال انسان بهش سخت انسان بده و کم میشه انسان توفیق اعمال اون ما رو در آخر خیر کنه بکنه و به دست بیاره حالا شاید این سبب باشه یعنی بخاطر شح نفس خاطر بخلی که انسان ها دارن نسبت به اون مالشون شاید این سبب شده که رسول الله صلی الله علیه و از اون مال شروع بکنه تا برسه به سخن گفتن و دعوت دادنی که راحت تر از مال دادن باشه چون انسان در مقابل مالی که کسب میکنه با زحمتش احساس مسئولیت میکنه و سخت براش که به راحتی از دستش بده بر خلاف اینکه از وقت خودش برای دعوت بذاره انسان راحت میتونه وقتش برای دعوت بذاره برای برای کسب مال و اینا نه حالا یک وجیه یعنی یک وجیه و شایدم ترتیب مراد نباشه یعنی شاید از باب تناوعل باشه که هر کدوم از اینها اعمال حالا جایی میشه دعوت دادن شرفش از اون مال در وردن بالاتر هم باشه. و جایی هم بر اكس جایی مالک سودمنده در دعوت به جای حالا فزونی در علم فزونی وقتی گفته میشه از باب فزول علم. سخوده ممتازهایی میگه که علم قرأت دریاست ولی حسرت میخورم از اون عمری که گذاشتم برای اینکه قرائت ها رو یاد بگیرم. و صرف محتوای قرآن نکردم بعضی از علما اینطوریه انسان وقت میذاره براش ولی ثمره و نتیجه نداره نه همه علومو بعضی از علوم تو قرآن یاد بگیر با تجوید بخون ولی قرائات رو یاد گرفتن دیگه بقیه ها فضله اصل نیست اصل تدبره افلا تدبرون القران على قلوب اغفالو اصل تدبر در قرآن فهم قرآنه و اون تاجری اهل خیر صدقه میشه که از فضلش بدونه علم داشته باشه به خاطر همین شاید اینجا برتری یافته یا ابتداء ذکر شده چون انسان که نمیدونه دیگه اهل فضل خیر نمیشه قالوا فلن يفعل قال فيمسك عن الشر فإن له صدقه وخنق قسمته که اگر نمیتونه خیری به مردم برسونی دست از شر بکش شرت مردم نرس بله قال المؤلف رحمه الله حدثنا ابو النعمان قال حدثني مهدي ابن ميمون عن واصل مولى ابي عينه عن يحيى ابن عقيل عن يحيى بن عمر عن أبي الأسود الديني عن أبي دار رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة وتحميدة صدق وبضع أحدكم صدق قيل في شهوته صدق قال لو وضع في الحرام اليس كان عليه وزر ذلك ان وضعها في الحلال كان له اجر صلى 77 حديث حديث حدیث ذر غفاري رضي الله عنه میگویید گفته شد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور ثوابمندان سبقت گرفتن پشت شدن برای جمع کردن ثواب مو عقب موندید مهاجرین يصلون كما نصلي نماز می‌خونیم مثل ما یصومون كما نصوم مثل حدیثی که داشتیم و يتصدقون بفضول اموالهم صدقه میدن و اون اموالی که دارم به دستشون قال اليس قد جعل الله لكم ما تصدقون شما الله مگه مالی بهتون نداده که صدقه بدید ان بكل تسبيحه وتحميده صدق در مقابل هر سبحان الله گفتن الحمد لله گفتن صدقه ای دارید هم برای شما اونجا هم داشتیم دعا کردن برای اون انصار براتون فضیلت براتون پیش‌تازی در مقابل خو. اون خوبی‌هایی که اون‌ها دارن انجام میدن. خب بالا اینجا یک وجه دیگری از حدیثه یعنی درهای خیر دیگری داره بهش نرشاد میکنه رسول الله صلی الله علیه و وسلم برای کسب عج و بضع احدکم صدقه هم جماعتون با همسرتون صدقه است. صحابه تعجب کرده گفتن قیل فی شهوته صدقه شهوتش آدم صدقه داشته باشه درش آدم شب با همسرش همسرش همبسرش و بعد با اون پاداشم بگیره. رسول الله صلی الله پاسخ میدن؟ قربدن لو وضع في الحرام اگر این رو در حرام میگذاشت حالا با استمنا یا با زنا کردن مگر در حرام میگذاشت علی کان علیه وزر این گناه به گردنش نبود گناهکار نمیشد با اینجا قیاس غسل مشروعی که چار مذهب دارن بر خلاف ظاهری ها که قیاس قبول ندارن ظاهری ها به اسم حزم ظاهری قیاس رو قبول نداره این حدیث رد بر اونهاست چون در اینجا رسول الله صلی الله علیه و مقایسه میگه میگه خب جمع کردن صدقه است چرا؟ چون زناش گناه کبیره هست همونطور که در حرام گذاشتن این شهوت جرم گناه و معسیت در حلال گذاشتنش چیه؟ صدقه است فضل ثواب پاداشه و کذالک این وضعها فی الحلال کن لهو اجر. اگر اون شهوتش در حلال باشه در مقابلش پاداش داره شیخ البنی رحمه الله یک مسئله اشاره میکنه میگه لازم هم نیست که انسان نیت داشته باشه به مجرد اون هم بسری بس انسان چون به خاطر عفّت نفسش هم بسری بس میکنه به خاطر که شهوتش بخوابه به خاطر اینکه چشمیش به ناموس مردم نباشه به خاطر عفّت و پاک دامنیش انسان اون اجر رو داره بدون شک اگر قرینه نیتی باشه از باب احتساب عج پادشی بیشتری هم خواهد داشت خطاب مسئله من تو این حدیث اشاره ای که در این حدیث شد به اینکه در جماع همبستری پاداشه در همبستری کردن پاداشه همونطور که زنا جرم و جنایت سختیه مقابل اون اون حلال رو انجام دادن از جماع همبستری در حلال به همون مقدار که اون قبیحه این محموده به همونقد اون محموده چون درش عفته درش باقدامنیه چون درش ستره و یکی از اعمال قرب و تقرب الالله الله عزوجل. که انسان باید اومادگیش داشته باشه واسه انسان تهیئ نفس داشته باشه نه این که بی خیال باشه نسبت بهش الا شد شد نشد نشد, نشد، نه بخاطر همین اطباء و پزشکان توصیه کردن به اون چیزهایی که طبیعت انسان را گرم بکنه از اون سردی در بیاره و مدح در خود شهوت مدح در خود شهوت عبدالله بن عمر میگه میگه فکر نکنم بعد از رسول الله صلی الله کسی مثل من شهوت داشته باشه مد بود یعنی کسی بتونه با چند زن در یک روز همبستری بکنه در یک شب با در همین از بس بر رسول الله صلی الله علیه و در جما همبستریش اومده که در یک شب با نه تا از همسرانش همبستری میکرد قدرت و توان جسمیش بالا بود این مردانگیه این قوت جسم، قدرت در نتیجه جسم توانای جسمه هر چقدر بیشتر بتونی این صدقه رو انجام بدی اجر و پاداشت بیشتره سبحانه الله وبحمدک سبحان الله الله علی محمد و علی محمد